دولار و الجمال مشکل های داخلی ما یک مشکلات هست که به دست خود من داد هم و همه ملت باید فرمیداد کوشش کنند من یه وقتی مثال می زدم تو اون سال های دهی که آیون همطور می رفتن به سمت روز به روز غلیزتر کردن اقتصاد دولتی منو وام گفتم جوری مثال بزنم یه موتوریه که میتونه این بار سنگین رو برسونه شما هم در کنار موتور را برید یا خودتون پشت فرمون بنشینید و هدایتش کنید شما این موتور رو گذاشتید کنار همه باری که تو این وانید یا تو این چیزاست خودتو رو دوشون گرفتید هن و هن دارید میرید جلو هم نمیرسید هم خسته میشید هم همه بار هم نمیشه همین موتور میمونه اینجا بیکاری این موتور بخش خصوصی است که کار می‌توانم بکنم کار بکنم و این مشکل را مشکل اقتصادی را و دست خود ملت ان شاء حل بشه و ملت ما به خودکفایی ان شاء الله برسد اینو اون زمان به اونا میگفتیم اثرم نمی‌کرد هم هر چی میگفتن به مردم بدید اینا اینو میگفتن مراد از مردم بخش خصوصی نیست مراده نظر امام رو توجیه میکردن گفتن مراد از مردم بخش خصوصی نیست مردم یعنی توده مردم به توده مردم چجوری میشه کمک کرد دولت اقتصاد در دست بگیره؟ کمک کنه به توده مردم اینجوری معنا میکردن فرمایش امام رو رحبر معظم انقلاب اسلامی سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی رو به روحصای سقوه و رئیس مجمع تشخیص مسئلات نظام ابلاغ کردند این که ما اقتصاد مقاومتی رو مطرح کردیم که خب خود اقتصاد مقاومتی شرایطی داره ارکانی داره یکی از بخشش همین تکیه به مردم اینقدر عناصری آماده به کار یا دارای مهارت یا دارای ابتکار یا دارای دانش یا دارای سرمایه در کشور هستند که اینها آماده کارن تشنه کارن دولت بایستی زمینه‌سازی کنه برای حضور اینها اینها رو راهنمایی کنه که کجاها میتوانن این توان خودشون رو به کار ببندن از اونها حمایت بکنه این مسئولیت عمده دولت اینه تجربه هم به ما نشان میده بیانات و معارف اسلامی هم تأکید میکنه که هر جا مردم میان دست خدا هم هست یاد الله مل جماعت یاد الله جماع هر جا مردم هستن عنایت الهی و کمک الهی و پشتیبانی الهی هم هست